هم مقام سید درک درکشواد مقام فضل عباس علیه السلام درک نمیکنیم که فضل عباس یک مقامی داره که حضرت عباس مستقر در امامت امام حسین استقرار داره خوب توجه کنید این کلمات به یک حساب علمی داره استفاده میشه حضرت اا فضل عباس در امامت و در ولایت مطلق سید الشہدا سلام الله علی استقرار داره حضور تام داره حاضر علی اطلاق هستش میگه ولایت امام حسین چیه ولایت امام حسین اینه که کل شی از برای اینان ذلیل هست مطیع هست یک نمونه رو ببینید چه طوری یک مش نمونه خرما روایت عجیز است ابن شهر آشوب در جلد چهار مناقب نقل میکنه شیخ اعلی الله مقام و شریف در رجال نقومه کنید کشی هم باز در رجالش نقومه راقی روایت زرارت ابن عینه. افقه اصحاب امام صادق از امام صادق نقومه کنم که امام صادق نقومه از پدرانم شنیدم که روزی عبا عبدالله علیه السلام رفت به عیادت یک بیماری یک شخص بیمار بود شدید هم معمول یعنی خیلی تب شدیدی داشت عبا عبدالله رفت علیه سلام و سلام رفتن به عیادن روایت اینه فلان ما دخل الحسین علیه سلام من قابل دار فلان ما یه همین که عبا عبدالله داخل خانه شد همین که اندلورود وارد منزل این بیمار شد. خوب دقت کنید ذکری نگفتن اصلا وجودشون ذکری است که ذکری بخونن حمدی بخونن چلمتون حمد وجوده بوده ما. حمد تکمینیه، اون حمد که شما در قرآن این حمد حمد تدوینیه لفظ اون حقیقت زیبایی حمد سوره حمد تمام زیبایی ها در اونجا نمفته است اون جمال مطلق و مطلق جمال در صورت امام منتوی هستش فلما دخل الحسین علیه سلاط و سلام باب دار همی که وارد خانه اون فرد بیمار که شدیدن در طب میسوخت سوخت شدن و تارال همه و رجل این طب از مرد در رفت رفتش این مرد به یک حالت تحجیب گفت یا ابا عبدالله چی شده؟ من به شما اعتقاد داشتم ولی الان یک جور ای شدم چه مقاماتی شما اندالله دارید؟ تعبیر این مرسل عجیبه یحروبو داره دیدم مریض می خودش می چطوری این بیماری در بدنش رفته بید همین که شما تشریف آوردی به منزل ما بر از بخت ندارم که تو به قدم رنجه کردی تشریف آوردی خوش آمدی که خوش آمدم ز خوش آمدن هست ازا جان گرامی فدای یک قدمت حالا که تشریف آوردی منزل ما منم که این بیماری رو داشتم من دیدم آقا به صرف آمدن شما این همیه این تب شدید یه رو با از دست شما فرار کرد رفت چون میدونید طب یک آتشیست یک جده از آتش جهننه در وقایت داریم که خدا اگر مؤمنی رو دوست داره و میخواد او رو از گناهان سال پاک کنه یک شب مقتلاق تب میشه در سال تب خیلی آثار خوبی داره آثار معنویی داره آدم رو سبک میکنه گفت آقا به صرف ورود شما الهوم معن یح رو دیدم از دست شما فرار کرده ای چه مقانهه اولا تب میگه قابل اشاره است تب چیه؟ یک حالته حتی عرز هم نیست عرز باز یک جنبه شکلی داره جوهر نیست که عرضم نیست این یک حالت مرموزه علی عبدالله صلی الله علیه یه قاعده یه کلی فرمودن با اینکه این توجه برای این مرد بود برای یه قاعده یه کلی فرمودن برای همه ما فرمودن که فقالا حسین صلاح تو و صلاح ما خلق الله تعالی شیعا الا و قد امرهو به ننا. امام قسم جلاله داری خوراقه مطلب رو محکم میکنه به قسم اونم به قسم جلاله میگه به خدا سوگند که ترتب شرعی داره به خدا سوگن خدا هیچ شیعی رو فرق نکرده خود شیعی عمومیت رو میبسونه. باز به حیعت تنکیر اومده مفید چه عمومی بشه خدا هیچ شیعی رو فرق نکرده مگر اینکه امر و اطاعت ما را بر اون شی لازم و واجب کرده این یعنی زل کل رو شیعن بکن حد در اختیار که نیست تمام اشیا به شکریتش در اختیار نیست حق تخلف نداره تمام اشیا که هر شکلی بگیره عدم بشه یا وجود بشه معدون بشه یا موجود بشه یا حتی در موجودیتش صورت قبلی رو از دست بده صورت بعدی پیدا کنه به هر طریقی چه به اصل وجودشه چه به کمال وجودشه تمام اشیاء شبیهیتشون وابستهی به ولایت مطلقه الهی هست حضرت قسم یاد کرده چون مطلب خیلی مهم بود شاید بعضیا در طول تاریخ برسن به این روایت خدای نکته در مقام تکذیب بر حضرت محکم کرد میفهمه والله ما خلق الله شیئا خدای هیچ چیزی رو نیافریده هیچ چیزی رو نیافریده مگر اینکه ادلا امر او به این مقام آیون است مقام که درکش به هر کس نیست این مقام امام نه اون پیکل ظاهری امام امام یک مقامی داره پشت پرده که اون مقام غیب بلایه ظاهروه امرون لا یملک و باطنه غیب لا یدرک اون باطن غیبی امام بحث مهم می داره به اون کسی نمیرسه که مقام مقام جمع جمعیه همه ی اشیاء اونجا حاضرند این نسل قرآن مجیده رسول یاسین و کل شیعین احسینا هفی امام مبین میخونیم ولی در مقام تطبیق چرا خوب ده نمی داستان چیه؟ مقام مقام عجیبیه این مقام امام مقام جمع است و این مقام جمع الجمعی رو مولود امروز حضرت آقا ابو عباس العباس سلام الله علیه مستقر هستند و درکش کرده از کودکی هم درکش کرده از کودکی حضرت ابو عباس العباس وارد این میدان شد اون مقامی که بزرگان با عمری جان کندن که آیا برسن آیا نرسن با عمری سلوک حالا میخواد سالک مجذوب یا میخواد مجذوب سالک حالا با تفاوتی که به تقدم و است این راه رو طی که آیا برسند آیا نرسن. فرض بفرماییم که برسن آیا به همون کهیفیت میرسن. ولی حضرت عبال فضل عباس در همون سنین کم و در سن کودکی به این مقام رسیده. نه اینکه حالا گذشته باید یک کهولایی پیش بیاد یه جانفشانی هم بکنه یه فداکاری بکنه تا به اون مقام برسه. نه چون اون مقام رو داشت این افعال رو انجام داد نه اینکه این افعال رو انجام داد دقت بفرمایید این کارا رو کرده بهش این مقامو دادن اون لیاقت و مقام ذاتی رو داشته که این چنین این مقام ازش ظهور و گروش پیدا کرده اون مقام چه مقامی بود که از کودکی و از دوران بچگی حضرت مستقر بودش ماهیتش رو مرحوم محدث نوری استاد خاشق عباس قومی حالالله مقامه همان کردند. خیلی روایت عجیبی آقای محدث نوری نمر میکنه از تشکول شهید اول روایت این چنین که وجود مقدس آقا امیر سلام الله علیه نشسته بودن حضرت عباس علیه السلام در سند کودکی بود، سندشون خیلی کم بود رو زامن راست حضرت امیر المومنی نشسته بودن آقا نوازششون میکردن فرمودن پسرم بگو واحد از فرمود واحد بعد حضرت فرمودن که بگو اسنین بگو دو گفت شرمندم به زبانی که گفتم واحد دیگه اسنین نیمتونه واحد واحده حرف یکیه نیست لو دلم جز علف قامت یار چه کنم حرف دیگر یاد ندارستادم گفتی واحد دیگه اسمه وجود نداره دیگه دوری وجود نداره در عالم همه در همون حقیقت واحده و زبانی که گفتم واحد دیگه بگم دوتا این شرکه همون یکیه این برقایی خیلی اوقات من دیدم بعض از آقایون که نقل می و اول اینکه نقلش کمه ثانیان خیلی از این نقل براحتی راحتی عبور میکنن. ارزش آقای اونده فکر یا روایت این واحدیت یک مقامه که خلافش این که آقا حضرت امیر به فرزندشون الگاه میکنه که پسرم بگو واحد یعنی اول فضل عباس تو رو دارن به مقام نورانیت جمعال جمعی که وحدت نورانی و نورانیت وحدانی تو رو دارن به اونجا دربت میکنن و این کار اصالتا بر امیر المؤمنینه فرزا آقا تلقین میکنه تلقین تلقین حقیقیه تلقین نیست که هر پدری مثلا پسرشو بنشونه رو پاشت بگه پسرم بگو خدا. اونم برد بگو خدا بگو بحر آفری زمان باست در دیاره یعنی شکلات هم بلاد این افکار رو بیاریم بیرون از این الحالات هایی که برای خودمون و ارتباط خودمون با فرزندانمون داریم اون بذاریم کنار اون واحدیتی که حضرت آقا شاق اولیا علیه آقای اعلیاء آقا تلقیم کرد به سقاق دشت کربلا اون واحدیت ورود به مقام نورانیت اهل بیت بود صاحب اون مقام امیر المؤمنین معرفتی به نورانیت معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیت از سن کودکی در رو برای حضرت عباس باز کرده که عباس چون تو مقام دین وارد بحث بشی بله مقام نورانیت عینیت اهل بیت هیچ کس نمیتونه وارد بشه اینیت مقام نورانیت اما یه ادیه هستن نیتونن این مقام نورانیت رو حمل کنن حامل مقام نورانیت بشن اول فضل العباس سلام الله علیه اون کسی است که حامل مقام نورانیت حامل مقام نورانیت چرا چون ورود پیدا کرده به واحد. بعد پدرش در مقام امتحانه که استعداد این پسر ظهور پیدا کنه پسرم بگو اسنه بگو دو دو دوتایی بگه بابا من دیگه وارد شدم پدر جان من منو وارد کردی به مقام وحدت وقتی دیگه وارد به مقام وحدت شدم دیگه دویی نیست نه دو که دوباشو نمیخوام بگم من دوییتی نمیبینم من صنوییتی نمیبینم همه از دست و اون شده است منو وارد مقامی کردی من دیگه تعیونی دیگهی نمیبینم و فیهم فبهیم هردوش اومده مر از سماک و ارزک حتی سحر انلا ایلا ایلا اند این رو پدر من دارم درک می کنم. من عباس رو می بینم که آلم چیزی جز ظهور اون حقیقت ازمانیست همه از دست شده ام. او شده است انا او انت او هو هو شده است من به اون رسیدم من جد جب جبره حسینی چیزی نمی بینم.